ببینم، آیا تا حالا به نجاتتون شک کردین؟ آیا این مایه تجربه شما خواهد بود اگه بدونین این مسیحیانی زیادی هستند که به نجاتشون شک دارن؟ سلام و به کلاس دیگه یه از دانشکده کوچک کتاب مقدس خوش اومدین. ما در حال رسیدن به انتهای عهد جادید هستیم. کتاب اول یوحنا به این دلیل نوشته شد تا هر ایمانداری رو از نجاتش مطمئن کنه. اطمینانی که ما شدیداً به اون نیازمندیم معلم ما در درس امروز شروع به بررسی این نامه حیرت انگیز میکنه قطب نمای ایمان حالا بیایید به معلممون گوش کنیم من به 16 آیه اول باب یک رساله اول یوحنا قطب نمای اطمینان نام گذاشتم من این آیات رو براتون میخونم ببینید آیا میتونید یک قطب نمای اطمینان در این آیات پیدا بکنید ما درباره کلام حیات به شما می نویسیم. کلامی که از ازل بود و ما آن را شنیده و با چشمان خود دیده ایم. آری ما آن را دیده ایم و دستهای من آن را لمس کرده است. آن حیات ظاهر شد و ما آن را دیدیم. پس ما موظفیم درباره آن شهادت دهیم. و از حیات جاودانی که با پدر بود و به ما شناسانیده شد، شما را آگاه سازیم. آری آنچه را ما دیده و شنیده ایم به شما اعلام می کنیم تا در اتحادی که ما با پدر و پسر او عیسی مسیح داریم، شما هم با ما شریک شوید. ما این را می نویسیم تا شادی ما کامل گردد. این از پیامی که ما از او شنیدیم و به شما اعلام می کنیم. خدا نور است و هیچ ظلمت در او نیست. پس اگر بگوییم با او متحد هستیم و در عین حال در ظلمت زندگی می کنیم، معلوم می شود که گفتار ما دروغ و کردار ما نادرست است. اما اگر در نور به سر میبریم همانطور که خدا در نور است در آن صورت با یکدیگر اتحاد داریم و خون عیسی پسر او ما را از همه گناهانمان پاک می سازد. اگر بگوییم که بی گناه هستیم خود را فریب می دهیم و از حقیقت دوریم اما اگر ما به گناهان خود اعتراف نماییم می توانیم به او اعتماد کنیم زیرا او به حق عمل می کند او گناهان ما را میآور زد و ما را از همه خطاهایمان پاک میسازد. اگر بگوییم که هرگز مرتکب گناهی نشده ایم خدا را دروغ گوش ایم و از کلام او کاملا بیخبریم ای فرزندان من این را به شما می نویسم تا گناه نکنید اما اگر کسی مرتکب گناهی شود در پیشگاه خدای پدر کسی را داریم که برای ما شفاعت می کند همانیسای مسیح که کاملا نیکوست زیرا خود مسیح کفاره گناهان ماست نه تنها گناهان ما بلکه گناهان همه مردم دنیا فقط وقتی ما از احکام خدا اطاعت میکنیم میتوانیم مطمئن باشیم که او را میشناسیم و اگر کسی بگوید که او را میشناسد ولی طبق دستورات او عمل نمیکند دروغگو و از حقیقت دور است اما وقتی کسی مطابق کلام خدا زندگی میکند محبت خدا در او به طور واقعی به کمال رسیده است. از این راه می توانیم مطمئن باشیم که در خدا زندگی می کنیم. هر که بگوید که در خدا زندگی می کند، زندگی او باید درست مانند زندگی عیسی مسیح باشد. حقایق بسیاری در این آیات نهفته است. نوشته ای هست که میگه گه آن کس که نداند و نداند که نداند در جهل مرکب ابد و دهر بماند. از او اجتناب کنید. آن کس که نداند و بداند که نداند لنگان خرک خیش به مقصد برساند او مثل یک کودک است. به او تعلیم دهید آن کس که بداند و نداند که بداند بیدارش نمایید که بس خفته نماند اما اگر کسی بداند و بداند که بداند به خرد از گنبد گردون به جهاند. چنین شخصی یک رهبره از او پیروی کنید بعضی ها بر رساله کوچکی که در انتهای عهد جدید به نام اول یوحنا هست، به این ترتیب تأکید کردند. این رساله توسط همون نویسندهی نوشته شده که انجیل یوحنا رو نوشته. او همیشه هدفش از نوشتن رو به ما میگه. یادتون هست که وقتی انجیل یوحنا رو مینوشت، به ما گفت که چرا این انجیل پر اهمیت چهار روم رو نوشته. او گفت، چیزهای هرتنگیز زیادی هست که اگر تمامی کارهایی که عیسی کرده نوشته شود دنیا گنجایش کتابهایی رو نخواهد داشت که درباره کارهای او نوشته میشود. اما در دعای آخر باب 20 انجیل یوحنا او گفته عیسی معجزات بسیار دیگری در حضور شاگردان خود انجام داد که در این کتاب نوشته نشد ولی اینقدر نوشته شد که تا شما ایمان بیاورید عیسی مسیح و پسر خدا است و تا ایمان آورده به وسیله نام او صاحب حیات جاودان شوید به خاطر اون هدفی که یوحنا برای نوشتن انجیل چهارم م اظهار کرده ما وقتی از هر باب انجیل یوحنا عبور می کردیم، این سوالات رو پرسیدیم عیسی کی هست ایمان چی هست حیات چی هست در هر باب از اون انجیل یوحنا رسول به اون سوالات جواب داده یوحنا به ما گفت که عیسی کی بود ایمان چی هست و به ما در تمامی بابهای انجیل گفت که معنی زندگی چی هست وقتی به این رساله میرسیم یوحنا باز هم به ما میگه که چرا این رساله رو نوشته در آیه 13 باب پنج اول یوحنا او به ما دلیل نوشتن این نامه رو میگه او گفته این نامه رو نوشتم تا شما که به نام پسر خدا ایمان دارید یقیم بدانید که حیات جاودانی دارید یوحنا انجیل یوحنا رو نوشت تا ما باور کنیم و حیات ابدی پیدا کنیم. حالا او زمینه ای برای اون انجیل می نویسه. یوحنا داره برای کسانی می نویسه که ایمان آورده و نجات یافتند. او داره برای افرادی می نویسه که ایمان آوردند تا اینکه بدانند که می دانند ایمان آوردند و بعد واقعا باور کنند. به نظر می رسه که یوحنا داره حرفش رو تکرار میکنه. در آیه 13 باب 5 می گه این نامه را نوشتم تا شما که به نام پسر خدا ایمان دارید یقین بدانید که حیات جاودانی دارید عملا اگر از زبان اصلی این رو بخونید او چنین چیزی میگه من برای شما که باور دارید مینویسم. شاید باوری اقلانی تا اطمینان کامل از ایمان و نجاتتان پیدا کنید و بعد واقعا به اون باور کنید شاید در مرکز ارادهتان بخشی از شما که تصمیم میگیره یعنی در قلبتون باور کنید این نشون میده که وقتی ما رساله اول یوحنا رو میخونیم دنبال یک چیز میگردیم. به عبارتی دنبال اطمینان میگردیم، اطمینان از نجات. مردم زیاد در امان نیستند. در بسیاری از عرصه های زندگیمون ما در امان نیستیم و شاید در عرصه های روحانی زندگی ما امنیت کمتری از سایر عرصه های زندگی داریم. بسیاری از مردم اطمینان چندانی به ایمان و نجاتشون ندارند. به این دلیل هست که مردم به راحتی میتونن به لحاظ روحانی مورد تهدید قرار بگیرن اگر شما در امان نباشید و از نجاتتون اطمینان نداشته باشید یوحنا میگه این نامه رو نوشتم تا شما که به نام پسر خدا ایمان دارید یقین بدانید که حیات جاودانی دارید وقتی انجیل یوحنا رو مطالعه میکردیم من از شما خواستم زیر هر آیه‌ای که یوحنا به ما میگه به چه چیزی باور کنید خط بکشید گاهی یک مرد یا یک زن به سراغ شبانش میره و میگه ما میخواهیم انجیل رو مطالعه کنیم. از کجا باید شروع کنیم؟ شبان سوال میکنه آیا شما ایماندار هستید؟ اگر اونها بگن نه واقعا ایماندار نیستیم اما قلبمون آماده هست و علاقمند هستیم اون موقع بیشتر شبانها به اون شخص میگن انجیل یوحنا رو بخون. چون یوحنا به همین منظور انجیلش رو نوشته. اون نوشته تا شما بتونید باور کنید پس انجیل یوحنا رو بخونید و هر بار که یوحنا به شما میگه به چیزی باور کنید اون رو هایلایت کنید وقتی رساله اول یوحنا رو میخونید زیر چه چیزی باید خط بکشید وقتی اون رو میخونید تجسم کنید که شما ایماندار هستید اما اطمینان ندارید لازمه که شما بدونید که میدونید وقتی اول یوحنا رو میخونید هر بار که یوحنا به شما میگه چطور میتونید بدونید که میدونید اون آیه رو هایلایت کنید هر جا که او به شما میگه چطور میتونید واقعا بدونید که ایمان دارید و نجات یافته اید اون آیه رو هایلایت کنید و خواهید فهمید در سر, تا سر این رساله کوچک که فقط پنج باب داره یوحنا در بسیاری از جاها به روش زیبایی به شما میگه که چطور میتونید بدونید که میدونید نجات یافته اید شانزده آیه اول رساله اول یوحنا که چند لحظه پیش براتون خوندم خلاصه ای از آنچه را که یوحنا میخواد به ما بگه برای ما نشون داد همونطور که در انجیل یوحنا انجام داد یادتونه که در انجیلش یوحنا در هجده آیه اول شمای کلی به ما داد یوحنا مثل واعظی بود که میگفت وقتی شما موعظه کنید سه کار انجام بدید اول به اونها بگید که براشون چی خواهید گفت بعد به اونها بگید و بعد از اون به اونها بگید که چی گفته اید یوحنا این کار رو میکنه این شیوه کار یوحنا هست اول در انجیل یوحنا او گفت که به ما چی خواهد گفت 18 آیه اول مقدمه بود بعد او به ما گفت و بعد در انتهای رساله در اون آیات کلیدی سی و سی که باب 20 یوحنا به ما میگه که به ما چی گفته بود یوحنا همین کار رو در رساله اولش انجام میده در 16 آهیه اول او خلاصه ای از رسالهش رو به ما میگه و میگه که به ما چی خواهد گفت اگر شما از نجاتتون اطمینان ندارید اگر به لحاظ روحانی خیلی امنیت ندارید اگر در ایمانتون امنیت ندارید پس در 16 آهیه اول این رساله شما یک قطب نمای روحانی دارید یک قطب نمای اطمینان که میتونید از اون برای مطمئن شدن از نجات و ایمانتون استفاده کنید. من این قطب نما رو تحت هشت عنوان مشخص کردم چون که هر قد نمایی 8 جهت عمده داره. اینها هشت جهت قد نمای اطمینان من هستند. اولین جهت در این قط نمای اطمینان واقعیات هست. ملاحظه می کنید که یوحنا با این شروع میکنه و میگه که ایمان بر اساس واقعیات هست، ایمان گامی در تاریکی نیست. وقتی ایمان رو درد کنید، ایمان یک خیز در روشنایی هم نیست ایمان بر اساس شواهد هست امید بر اساس شواهد نیست یادتون هست که ابرانیان 11.1 گفته ایمان اطمینانی هست به چیزهایی که به آن امیدواریم و اعتقادی است به چیزهایی که نمیبینیم ایمان به امید شما اطمینان میبخشد بین امید و ایمان تفاوت هست امید فقط امید هست اما ایمان همیشه اساسی داره که بر اون بنا شده به این دلیل هست که یوحنا در ابتدا به ما میگه انجیلی که به با اون باور کردیم ما رو نجات داده و اولاً بر مبنای واقعیات هست یوحنا میگه من درباره چیزی به شما می نویسم که واقعی هست اون چیزی هست که ما دیدیم و شنیدیم ما به اون نگاه کردیم ما اونو لمس کردیم حیات آشکار شد و ما اون رو دیدیم و لمس کردیم یوحنا اینجا از کلمه یونانی استفاده میکنه که معنیش اینه ما اون رو از فاصله ای دیده ایم و ما اون رو کاملا از نزدیک ایم و اون رو طوری لمس کردیم که یک جواهرساز به یک الماس دست میزنه و اون رو زیر ذره بین نگاه میکنه یوحنا آشکارا از مسیح قیام کرده صحبت میکنه یوحنا میگه گوش کنید ما شاهدان عینی هستیم و او را کاملا از نزدیک دیدیم ما سوراخ میخ رو در دست او لمس کردیم ما به پهلوی او دست گذاشتیم ایمان ما به مسیح قیام کرده بر اساس واقعیات است وقتی شما کتاب مثل انجیل یوحنا و دیگر کتاب های عهد جدید رو مقایسه میکنید دو واقعیت انجیل هست که مشخصه یادتون باشه دو واقعیت انجیل اینها هستند مرگ عیسی مسیح به خاطر گناهان ما و قیام عیسی مسیح از مردگان ثابت میکنه که او خدا هست. پولوس میگه عیسی مسیح به خاطر گناهان ما مرد. بر اساس نوشته های کتاب مقدس، عیسی مسیح به خاطر گناهان ما مرد. به گفته کتاب مقدس، عیسی مسیح از مردگان برخاست. این انجیل یا خبر خوش هست. این چیزی هست که در قرنتوس برای شما موعظه کردم. او در اول قرنتیان پانزده یک تا دو میگه ای برادران، اکنون میخواهم مجده ای را که قبلا به شما اعلام کرده بودم و شما قبول نمودید و در آن پایدار هستید به یاد شما بیاورم اگر به آن متوسل باشید به وسیله آن نجات می‌یابید مگر اینکه ایمان شما واقعی نباشد جهت بعدی در قطب نمای اطمینان ایمان هست. شما باید بر اون واقعیت‌ها ایمان بیارید شما حقایق انجیل رو دارید که جهت اول هست جهت دوم ایمان هست ایمانی که بر اون واقعیات قرار گرفته جهت سوم نتیجه قرار دادن ایمان بر واقعیت مرگ ایسای مسیح است. ایسای مسیح به خاطر گناهان ما مرد و وقتی به این باور کنید چه تفاوتی ایجاد میشه، اون به اندازه دنیایی فرق میکنه. آیا میدونید که گناهان شما بخشیده شده؟ آیا شما هنوز هم چمدانهای بار تخصیرات رو در سرتاسر سر زندگی به دوش میکشید؟ آیا واقعا اطمینان دارید که گناهان شما بخشیده شده؟ شخصی میگفت ما چیزی رو که خدا فراموش کرده به خاطر میاریم و چیزی رو که خدا به خاطر میاره فراموش میکنیم وقتی گناه میکنیم خدا گناهان ما رو فراموش میکنه وقتی ما ایمان نجاتمون رو بر مرگ عیسی مسیح قرار میدیم و میگیم خدا یا ایمان دارم که گناهان من بخشیده شده چون عیسی مسیح به خاطر گناهان من مصلوب شده خدا میگه بسیار خوب پس من گناهان تو رو میبخشم و فراموش میکنم اما ما گناهان خودمون رو فراموش نمی کنیم. مشکل ما این هست. به این دلیل که ما بار تقصیرات رو به دوش میکشیم. ما چیزی رو که خدا فراموش کرده، فراموش نمی کنیم. در زمان، چیزی رو که خدا به خاطر میاره، ما فراموش میکنیم. خدا به خاطر میاره که ما گناهکار هستیم و اون نمی که ما هرگز اینو فراموش کنیم. به این دلیل فراموش میکنیم، گناهکاریم چون که خیلی گناه می کنیم. خدا همیشه به خاطر میاره که ما گناه کاریم و نمیخواد که ما فراموش کنیم که کاریم. وقتی ما ایمانمون رو بر مرگ مسیح برای بخشش اون گناهان قرار میدیم خدا گناهان ما رو میبخشه خدا گناهان ما رو فراموش میکنه اما گناهکاری ما رو به خاطر میاره ما برعکس فراموش میکنیم که کاریم و گناهان خودمون رو به یاد میاریم چیزی که یوحنا در این قدنمای اطمینان برای ما بنا میکنه دقیقا این هست اگر شما واقعا به واقعیت مرگ عیسی مسیح بر صلیب ایمان دارید، پس بخشیده شده اید. نتیجه قرار دادن ایمانتون بر واقعیت مرگ عیسی مسیح بخشش گناهان است. یعنی بخشش مطلق. در این باب نخست یوحنا میگه اگر بگوییم که بیگناه هستیم، خود را فریب میدهیم و از حقیقت دوریم. اما اگر به گناهان خود اعتراف نماییم، می توانیم به او اعتماد کنیم، زیرا او به حق عمل می کند. او گناهان ما را میامرزد و ما را از همه خطاهایمان من پاک میسازد. اگر بگوییم که هرگز مرتکب گناهی نشده ایم، خدا را دروغ گوش ایم و از کلام او کاملا بیخبریم. در زبان یونانی زمان حال ساده بیانگر زمان مداوم هست. بنابراین هر بار که شما زمان ساده رو دارید، میتونید کلمه دائما رو در اونجا وارد کنید. اگر ما دائما به گناهانمون اعتراف کنیم، او دائما ما رو میبخشه خون مسیح ما رو از هر ناراستی پاک میکنه بخشش نتیجه ایمان به مرگ عیسی مسیحه آیا شما بخشیده شده اید و میدونید که از هر ناراستی پاک شده اید چون که ایمانتون رو بر واقعیت مرگ مسیح قرار دادید که به خاطر گناهان شما مرد و از مردگان قیام کرد و ثابت نمود که خدا بود اگر نه این رساله اول یوحنا رو بخونید و دعا کنید و از خدا بخواهید که چشمان روحانی شما رو باز کنه و به شما اطمینانی بده که یوحنا از اون صحبت میکنه من تعجب میکنم که چرا خیلی ها از نجات ابدیشون اطمینان ندارن یوحنا رسول میگه که ما میتونیم اطمینان داشته باشیم یادتونه که گفتیم یک قطنما هشت جهت داره و گفتیم که در این قطنمای اطمینان هم هشت جهت وجود داره سه جهت اول عبارت ایمان به و بخشش به خاطر اینکه شما به واقعیت مرگ ایسای مسیح برای بخشش گناهانتون ایمان آوردید دومین جهت در قط نمای اطمینان نتیجه ایمان به قیام ایسای مسیح هست. یوحنا وقتی اولین باب رسالش رو می نویسه در مورد قیام ایسای مسیح بسیار به هیجان آمده. اونجا که می نویسه ما درباره کلام حیات به شما می نویسیم کلامی که از ازل بود و ما آن را شنیده و با چشمان خود دیده ایم. آری ما آن را دی و با دستهایمان من آن را لمس کردهایی. یوحنا به ایسای قیام کرده اشاره میکنه قیام ایسای مسیح چیزی هست که رسولان بیشترین معذر رو دربارش کردند. چرا قیام ایسای مسیح یک واقعیت حیات انجیل هست؟ به این دلیل که ایمان بر واقعیت قیام او میتونه به معنی دوستی باشه. دوستی با مسیح زنده و قیام کرده. پتروس در مورد این واقعیت که شما میتونید ایسای مسیح رو بشناسید بسیار حیجان زده است پولس به این واقعیت علاقمند بود که در مسیح در جایهای آسمانی در حضور الهی شما تمام عطایای روحانی رو که نیاز دارید میتونید دریافت کنید تا به وسیله اون اونطور که خدا از شما میخواد و شما را برای اون نجات داده زندگی کنید یوهنهای رسول هم به قیام ایسای مسیح علاقمند هست حیجان انگیزترین واقعیت انجیل مرگ ایسای مسیح به خاطر گناهان ما نیست. اگرچه زمانی که شما می‌دونید یک گناهکاری دو مشکل گناه دارید اون بسیار هیجان انگیز و مهم هست اما من فکر می‌کنم هیجان انگیزترین و پویاترین واقعیت انجیل قیام عیسی مسیح است قیام عیسی مسیح به این معناست که عیسی مسیح زنده است و در روی کره زمین هست و شما می‌تونید او را بشناسید و عملاً با مسیح قیام کرده و زنده دوستی و رابطه برقرار کنید این کلمه دوستی در زبان یونانی کوینونیا هست. کلمه دوستی به معنی چیزی مثل شراکت هست. معنی کلمه دوستی این هست که وقتی شما با عیسی مسیح رابطه دوستی دارید، عیسی با شما در یک کشتی هست. همونطور که وارد قایق پتروس شد و اون رو با ماهی پر کرد، عیسی مسیح میتونه وارد کشتی شما بشه، وارد زندگی شما بشه و با شما باشه. وقتی عیسی مسیح با شما در یک کشتی باشه، تفاوت زیادی خواهد بود. چون شما با او رابطه دوستی دارید به این معنی که هر چیزی که او داره و سرچشمه اونها هست از آن شما نیست هست چون که او در کشتی شما هست من نمیتونم اما او میتونه و او با منه من نیستم بلکه او هست و او با منه این بسیار هیجاننگیزه وقتی بدونید که با مسیح دوستی و شراکت دارید از نظر تجاری اگر شما با کسی شریک هستید اون موقع هر چیزی که شما دارید، مال شریک شما هم هست و هر چیزی که شریک شما داره مال شما هم هست. شما شریک هستید و در همه چیزهایی که دارید با هم مشترک هستید. حالا به این فکر کنید، شراکت با ایسای مسیح هیجان انگیز نیست؟ ایسای مسیح شریک من هست. این کاری نیست که من بتونم انجام بدم. بلکه کاریه که او میتونه انجام بده. این من نیستم بلکه او هست. چونکه او شریک منه. هر چیزی که او داره مال من هم هست چون با من شراکتی برابر داره اما یادتون نره که برعکس این نیست صادقه اگر شما با او شریک هستید هر چیزی که شما دارید مال او هم هست شما فقط از اون نمیخواید که وارد زندگی شما بشه وارد کشتی شما بشه نقشه شما و کار شما بشه بلکه باید بخواید که بشنوید که او میگه من میخوام تو رو وارد زندگیم کنم وارد نقشه و کارهام کنم. پس این رفاقت و شراکت جاده دو طرفه هست. دوستی چهار رومین جهت در قطب نمای اطمینان هست. دوستی نتیجه اعتماد بر واقعیت قیام ایسای مسیح هست. جهت پنجم قطب نمای اطمینان اونجا هست که یوحنا تصمیم میگیره معذر و متوقف کنه و شروع میکنه به دعا کردن برای زندگی های شخصی ما. نکته ای هست که یوحنا بیش از هر چیز دیگری در این رساله بر اون تاکید میکنه و اون کلمه پیروی است این نکته ای هست که یوحنا بارها و بارها به با اون اشاره میکنه وقتی این رساله کوچک اطمینان رو میخونید وقتی میخاید بدونید چطور میتونید از نجاتتون مطمئن بشید اینجا مفهومی هست که بیش از هر مفهوم دیگری برای شما برجسته خواهد شد مفهوم پیروی وقتی مردم به عیسی میگفتند که به او باور دارند او همیشه میگفت مرا پیروی کنید اگر مرا پیروی کنید من شما را خواهم ساخت شما را مطمئن خواهم کرد شما را شبیه خودم خواهم کرد شما را هر چیزی خواهم کرد که برای اون طراحی شده ای اگر مرا پیروی کنید یوحنا بارها و بارها میگه فقط وقتی ما از احکام خدا اطاعت میکنیم میتوانیم مطمئن باشیم که او را میشناسیم ما اینجوری او را میشناسیم بنابراین پیروی نکته بسیار مهم و جهت مهمی در قطب نمایه اطمینان هست. بر اساس شانزده آیه ابتدای رساله اول یوحنا بعد از پیروی جهات دیگری هم در قط نما هستند. به عنوان مثال شما میتونید ببینید که حداقل از این متن آزادی استنباط میشه. عیسی وعده آزادی داده. عیسی در باب هشتم انجیل یوحنا گفته اگر مطابق تعالیم من عمل کنید در واقع پیرو من خواهید بود این مرحله دوم زندگی یک پیرو جدی عیسی مسیح هست. این جاییه که شما هر چیزی که او فرمان میده انجام میدید. شما مثل شاگردی هستید که هر کاری رو که یاد میگیره انجام میده و هر کاری رو که انجام میده یاد میگیره. این شاگردسازی هست. در باب هشتم یوحنا عیسی گفته که باور کردن مرحله اول هست و پیروی یا شاگردی مرحله دوم. اما بعد مرحله سوم رو توصیف میکنه. او گفته اگر مطابق تعالیم من عمل کنید، در واقع پیروه من خواهید بود و حقیقت را خواهید شناخت. او در اینجا برای شناختن کلمه‌ای را به کار برده که به معنی رابطه است و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. بعد او به ما میگه که واقعا منظورش چیه وقتی میگه پس اگر پسر شما را آزاد سازد، واقعا آزاد خواهید بود، چیزی که عیسی عنوان میکرد این بود. اولاً شما باور میکنید بعد پیروی میکنید. و در کلام او میمونید اما بعد روزی اتفاقی میفته شما فراتر از صفحات مقدس میدید و با کلام زنده ملاقات میکنید آیا تا کنون با کلام زنده ملاقات کردی؟ وقتی این کار رو بکنید رابطه ای که با او خواهید داشت ایسا گفته شما را آزاد خواهد کرد ایسا تجربه رابطه ای رو توصیف میکنه که مثل آزادی از زندان هست به این ترتیب شما میتونید از تمام گناهانتون و از تمام مشکلات فردیتون آزاد بشید شهست سال بعد از اینکه یوحنا با عیسی ملاقات کرد او کتاب مکاشفه رو با این کلمات به ایسای مسیح نسبت داد و گفت و از ایسای مسیح که شاهد امین و نخوص ساده از مردگان و رئیس پادشاهان جهان است مر او را که ما را محبت می نماید و از گناهان ما به خون خود شست و ما را نزد خدا و پدر خود پادشاهان و کهنه ساخت او را جلال و توانایی باد تا عبدالاباد آمین عیسی گفته منو پیروی کن و من تو را خواهم ساخت 60 سال بعد یوحنا گفته ما او را پیروی کردیم و او ما را ساخت در زبان اصلی ترجمه دقیقترش این هست. او ما را محبت کرد و از گناهانمان رها کرد گناه فقط یک تله نیست که با درماندگی گرفتار اون بشید. یوحنا اینجا در باب یک رسالهش میگه اگر گوییم که گناه نکرده ایم او را دروغگو می شماریم و کلام او در ما نیست اما یوحنا میگه ای فرزندان من این را به شما می نویسم تا گناه نکنید و اگر کسی گناهی کند شفیعی داریم نزد پدر یعنی عیسی مسیح عادل ببینید این امکان هست که از گناه آزاد بشید ما نباید مرتبا گناه بکنیم ما میتونیم از قدرت گناه آزاد بشیم این امکان وجود داره که آزادی از گناه رو تجربه کنیم وقتی مسیح متولد شد او را ایسا نام نهادند چون گفته شده که او قومش را از گناهانشان نجات خواهد داد فقط این نبود که او گناهان قومش را خواهد بخشید بلکه قوم خودش را از قدرت گناه آزاد خواهد کرد آزادی ششمین جهت در قوت نمای اطمینان هست جهت دیگر قوت نمای اطمینان چیزی هست که میتونیم به اون پوری یا کمال بگیم باز هم یوحنا به ما میگه که چرا این رساله رو مینویسه در آیه چهار از باب یک یوحنا میگه ما این را می نویسیم تا شادی ما کامل گردد. بسیاری از مردم تجربیات ناقصی از زندگی مسیحی دارند. تجربیات ما از مسیح فقط تکه از چیزی هست که باید تجربه می کردیم. چیزی که ما داریم واقعی و خوب هست اما هنوز چیزهای زیادی باقی مونده چیزهای خیلی زیادی هست که یوحنا میخواد ما تجربه کامل داشته باشیم ما میتونیم به اون پری یا کمال بگیم. من هشتمین جهت در قطب نمای اطمینان رو ثمرآوری نام گذاشتم. یوحنا میخواد ببینه که محبت مسیح در ما کامل شده. به عبارت دیگه یوحنا میخواد سمراتی برای خدا در تجربه ایمان از مسیح داشته باشیم. من شما رو در دانشکده کوچک کتاب مقدس تعلیم دادم که وقتی به کتاب مقدس نگاه میکنید این سوالات رو بپرسید. اون چی میگه؟ معنی اون چیه؟ معنی اون برای من چیه؟ و به عبارت دیگه مشاهده، تفسیر و کاربرد. سوال چار هست که وقتی کتاب مقدس رو میخونید باید بپرسید اون چی میگه؟ معنی اون چی هست؟ معنی اون برای من چی هست؟ منظور خدا از اون چی هست؟ در تمام تجربیات زندگی در مسیح جواب خوبی برای اون سوال وجود داره چه چیزی برای خدا در این هست؟ ما به تجربه روحانی به همون نحو میرسیم که به دیگر چیزها با یک طرز فکر خودمهور برای من چی داره؟ خداوندا میخوای به من چی نشون بدی؟ اما وقتی به گفتگوی شعول ترسوسی با خداوند نگاه میکنیم واقعا وقتی این سوال رو میپرسیم به بلوغ میرسیم خداوند از من میخوای چی کار کنم؟ برای تو در این چی هست؟ کتاب مقدس به این ثمر آوردن میگه وقتی ما یوحنا باب پنج رو بررسی میکردیم گفتم که اون باب عیسی رو به عنوان تاکی نشون میده که دنبال شاخه ها میگرده عیسی مسیح دنبال شاخه هایی میگشت که توسط اونها میوه بیاره وقتی این شاخه ها بخاند که میوه بیارن اونها باید در تاک بمانند که همون مسیحه تاک میخواد میوه ببینه اما بدون شاخه نمیتونه میوه به بار بیاره پس ایسا تاکی هست که دنبال شاخه میگرده و سوال این هست آیا ما مایل هستیم یکی از شاخه‌های او باشیم این تمثیل بزرگی از عیسی است میوه‌ها بر روی تاک رشد نمی‌کنند همونطور که تاک دنبال شاخه‌ها می‌گرده عیسی به شاخه‌ها گفته بدون من شما هیچ کاری نمی‌تونید بکنید اما همینطور میگه بدون شما هم من نمی‌تونم کاری بکنم بنابراین وقتی دنبال اطمینان از نجات خودتون هستید مسمر ثمر بودن یک نشانه از اطمینان هست. وقتی بفهمید که خدا کارش را توسط شما انجام میده، این واقعیت نه تنها شما را تسلی خواهد داد و به شما کمال خواهد داد، این واقعیت همینطور به شما اطمینان خواهد داد که نجات یافته اید. سمرووری هشتمین جهت در قطب نمای اطمینان هست. به طور خلاصه هشت جهت قطب نمای اطمینان عبارتند از واقعیات، ایمان، بخشش، دوستی، پیروی، آزادی، کمال و ثمرآوری اگر بفهمید که مصمر سمر نیستید و کمال ندارید و یا آزادی ندارید، اون وقت به جایی که شروع کردید برگردید. پولس به ما تعلیم میده که خودمون را آزمایش کنید. وقتی خودتون را آزمایش می کنید، دوباره به اون واقعیات برگردید. آیا واقعا به مرگ ایسای مسیح باور دارید؟ و از بخشیده شدن خودتون مطمئن هستید؟ آیا به قیام او باور دارید و با او دوستی دارید؟ اگر اطمینانتون را از دست دادید شاید مهمترین جهت در این قطب این جهت باشه پیروی این میتونه سریعتر از هر چیز دیگری اطمینان رو به شما برگردونه چیزی هست که خداوند میخواد شما انجام بدید و شما انجام نمیدید وقتی بر اون متمرکز بشید و با فیض او چیزهایی رو که او میخواد انجام بدید در اکثر مواقع اطمینان برمیگرده. من این قد نمای اطمینان را به عنوان محصول اول یوحنا به شما توصیه می کنم. این قدر نمای اطمینان چیزی رو به شما نشون میده که یوحنا میخواد به شما نشون بده که چگونه از نجات خودتون اطمینان حاصل کنید. عزیزان، آیا میدونید که میدونید آیا واقعا و تماماً به عیسی مسیح به عنوان خداوند و، ناجی خودتون اعتماد دارین؟ اگه اعتماد ندارین، دوباره این درس و کتاب اول یوحنا رو بخونید تا بتونین آرامش و شادی خدا رو در حالی که در فیز عظیم اونا رو میگیرید تجربه کنید. خدا رو شکر می کنم که شما تصمیم گرفتید. کلام خدا رو با ما مطالعه کنید و منتظریم که در درس بعدی این کتاب عظیم اول یوحنا رو ادامه بدیم. تا برنامه بعدی همونطور که یوهنای رسول به ما میگه دنیا و چیزهای دنیایی رو دوست نداشته باشید بلکه به همدیگه محبت کنید چون خدا محبته و تمام کسانی که در خدا زندگی میکنند محبت میکنند چون او نخست ما رو محبت کرد.